دختر پادشاه و دیو سهسر این داستان نقلیست از خانم فاطمه قیمتی از کرمانشاه در روزگار قدیم در شهری دور پیرمرد مرد فقیری همراه دو پسرش از راه کشاورزی گذران زندگی میکردند و به سختی از پس مخارج زندگیشون بر پسر بزرگتر بسیار عاقل و فهمیده و زحمت کش بود و سعی میکرد کمک حال پدرش باشه. یه روز که اون مثل همیشه برای آبیاری زمین میرفت در بین راه متوجه مادیان زیبایی شد. اونقدر زیبا که پسر دلش میخواست به هر قیمتی شده صاحب این مادیان بشه. پرسان پرسان متوجه شد صاحب مادیان دختر پادشاهه و شنید هرکس کس بخواد صاحب این مادیان بشه باید شرطی رو که دختر پادشاه پیش پاش میذاره قبول کنه اگر پیروز بشه پادشاه اون رو به دامادی قبول میکنه و صاحب مادیان هم میشه پسر پدرش رو از تصمیمش با خبر کرد پدر خیلی سعی کرد اونو منصرف کنه اما پسر زیر بار نرفت. پادشاه وقتی موضوع رو فهمید به پسر خندید و دستور داد که اونو از قصر بیرون کنن. اما پسر سختتر از این حرفا بود. اون قدر به قصر رفت و آمد تا پادشاه راضی شد پسر پیش دخترش بره و شرط اون رو به گوش خودش بشنوه. دختر پادشاه وقتی پسر رو به اتاقش آوردند گفت تنها شرط من برای ازدواج به دست آوردن الماسیه که پیش دیو سه سره و برای اینکه اون رو به دست بیاری باید دیو سه سر رو شکست بدی اون بالای بلندترین کوه این سرزمینه که هفت دریا و هفت کوهستان از اینجا فاصله داره و اونجا زندگی میکنه پسر که با دیدن شاهزاده خانوم یک دل نصد دل عاشق شده بود تصمیم گرفت هر طور شده شاهزاده خانوم و مادیان را به دست بیاره به همین خاطر شرط رو با جون دل قبول کرد و با پدر و برادرا خداحافظی کرد و راهی سفر دور و درازی شد اون رفت و رفت اون قد رفت که هفت دریا و هفت کوهستان رو با همه سختی ها پشت سر گذاشت و به پای کوهی که دیو سه سر توی اون زندگی می کرد رسید از اسب پیاده شد و خواست کمی استراحت کنه و بعد به جنگ دیو بره دید پیرمردی با موهای سفید به اون نزدیک میشه. پیرمرد از اون پرسید: ای پسر، برای چی به اینجا اومدی؟ یه دیو خطرناک همین نزدیکیاست. پسر گفت: ای پیرمرد، به جنگ دیو اومدم. هر طور شده باید شکستش بدم و شرط دختر رو به جا بیارم و خودمم به آرزوم برسم. پیرمرد گفت اگه میخوای دیوه سه سه رو شکست بدی باید به طولانی ترین قار بری و شمشیر دولبه و تیزی رو که اونجاست رو به دست بیاری پسر برای به دست آوردن شمشیر به طرف درازترین غار راه افتاد روزها و شبهای زیادی رو پشت سر گذاشت زیاد رفت و کم استراحت کرد وقتی به غار رسید مرد قد کوتاهی رو دید مرد گفت برای چی به اینجا اومدی؟ پسر حکایت خودش را تعریف کرد و گفت باید هر طور شده شمشیر رو به دست بیارم مرد گفت ای پسر برای به دست آوردن شمشیر اول باید دیو رو خواب کنی پسر گفت چطور دیو رو خواب کنم؟ مرد قد کوتاه گفت برای خواب کردن دیو باید از گیاهی که هر ده سال یه بار تو سردترین نقطه زمین رشد میکنه بیاری و دیو فقط با بو کردن اونه که به خواب میره مرد کوتاه قد ادامه داد ولی حالا هیچ کس نتونسته حتی یه شاخه از اون گیاه رو بکنه و بیاره پسر گفت من باید اون گیاه رو به دست بیارم. پسر برای پیدا کردن گیاه راه افتاد. هر چه جلوتر میرفت سرما شدیدتر و طاقت فرساتر میشد و. قدرت و تحمل اون در برابر سرما کمتر میشد. یه دفعه صدایی شنید. اول خیلی ترسید. کمی که جلوتر رفت، دید خرس بزرگی اونجاست که زخمی شده. به طرفش رفت با استفاده از گیاه هایی که توی بغتش بود اونو مداوا کرد. خرس هم در برابر کار و فداکاری اون به پسر مادهای رو داد که بزنه به خودش و سرما براش قابل تحمل بشه. پسر خوشحال و امیدوار از خرس جدا شد و رفت و گیاه را پیدا کرد به طرف قاری که اجده تو اون زندگی میکرد رفت و دهانه غار آتیش درست کرد و گیاه رو روی اون انداخت و از اونجا دور شد بعد از چند ساعتی که برگشت دید صدایی از درون قار نمیاد با احتیاط وارد قار شد و دید اجدها به خواب عمیقی فرو رفته تند و تیز شمشیر را برداشت سمت دیو سر رفت مصممتر از قبل راه رفتر باز بازگشت و بالای سر دیو سر رسید شمشیر را کشید و مبارزه را شروع کرد سه شبان روز جنگید و مبارزه کرد تا بالاخره دیوه سر رو شکست داد و الماسی را که دختر پادشاه گفته بود رو به دست آورد پادشاه و دخترش اصلا امید به موفقیت پسر نداشتن و پیرمرد هم نگران سلامتیش بود که خبر رسید پسر با الماس به دروازه شهر نزدیک شده شهر رو چراغونی کردن و برای جشن عروسی دختر پادشاه با پسر کشاورز همه چیز را مهیا کردند. به مناسبت ازدواج اون دو نفر هفت شبان روز جشن و پایکوبی برپا بود. پسر پس از ازدواج پدر پیر و برادرش رو به قصر برد و اونجا سالیان سال به خوبی و خوشی زندگی کردند.